نام نام به معنی شهرت نیکوس میدونی علاوه بر معنی اه. نام به معنی شهرت نیکوس ضد نن نام یعنی ضد نام یعنی ضد شهرت نیکوس بند شهرت دارم که آدم خوبی هستم چما میدیندن این دو ضد یعنی ضد اون شهرت دارم خوردن گفتم یکی از سهله که بسیار معنی خیلی یکی از معنی تحمل کردن. میگه باقا یک ساعت پشت خورد یکی نگفت یعنی بهش پشت دادن تحمل کرد خوردن و یعنی تحمل کردن دشخار یعنی ضد تحمل یعنی غیر قابل تحمل و این دوشخار کم کم خلاصه شده شده دوشوار دوشوار و دوشخار یکیه بله هره دوش مثل دوشم مثل دوشخیم یعنی میرغذب که اصلا یعنی بدخوب. دو دوشاگاه یعنی خشمگین دوشپسند و نظاهره به دانستان کاردوش خارگشت جهان تیره شد بخت او خارگشت روشن بیامد برادرش با خواسته حالا سیاوش هم نمیدونه افراسیاب چنین خوابی دیده و چطور شده که برادرش فرستاده با مال و انبال کیکاوست هم نمیدونه سیاوش هم نمیدونه الان هم که تو نامه میفیسه چیزی از اون مطلب نمیدونه که بگه نمیگه هیچی نیست این و کاغوس هم روی همون بدگمانی که نسبت به افراسیاب داره تو به کلی دیوانه است دیوانه هست ولی خیلی نه بنده بنده است، سیادتر نیست چون میشناخته افراسیابو و از ماجرهای خواب خبر نداشته فکر کرده که این جنسش بدی و ممکنه این جبون بولش بزنه این میگه که بی آمد برادرش همی کرسید از با خواسته بس خوب رویانه که راجب حدیه خیلی عرف سزن و پیش که زنهار خواهد ز شاه جهان زنهار یعنی امان و تحمیل که زنهار خواهد ز شاه جهان سپارت به دور تخت و تاج مهان اینجا تخت و تاج رو به او بده معنیش است که اون چه مال ایران گرفته بس بده نه خود بسنده کند زین جهان مرز خیش بسنده کردن اصلا بس دیگه یعنی اکتفا کردن یعنی به سرزمین خودش اکتفا بکنه بگه همین سرزمین من برای من کافی دیگه چشم به دیگری نداشته باشه. پسنده کند زین جهان مرز خیش یعنی زمین خودش رو گفتم اون دفعه که مرز به معنی زمینه به معنی سرحد خیلی تازه است پنجه ساله و سرحد گرفتن بلا مرز و سردنی پسنده بسنده کن از این جهان مرز خیش بداند همه مایه و ارزخیش یعنی حد خودشو بشناسه جای خودشو بدونه خودش خودشو بدونه چی دونه اولش که نه نه عزیز، نه آخرش باید بخونه، اولش که کند زین جهان مرز خیش بداند همه مایه و ارزخیش، خویش عرض، یعنی عرضش از عرض ایران زمین نه نیست نیز خاک یعنی سپردن، یعنی راه رفتن ندیگه ره سپردن، راه، ره سپار، ره, سپار، ره یعنی کسی راه میده خاک ایران زمین روش راه نره، یعنی تخلیه کنید از ایران زمین نسفرد نیست خاک بش روید دل از کینه و جنگ پاک درش رو از کینه و جنگ پاک اینجا قیده یعنی به کلی کاملا بش روید دل از کینه و جنگ پاک بعد میگه برای اینکار خیشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش اینا رو توی نامه داره برای شما مینویسه دیگه اینا رو برای کیکابوس آقوست داره مینویسه زخیشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش آمد گفه پیلتن تو نامیم الانم رستن پهلوان بزرگ خدمت شما میرسه که این از شما خواهش بکنه که اگر قبول بفرمایید ما این کار رو تموم کنیم این جنگ دیگه برداشته بیشه بدین خواهش آمد گفه پیلتن گرو را ببخشد یعنی اگر افراسی ها ببخشید گر او را ببخشد زمهرش تزاست که بر مهر او چهر او بر بباست اونا دیگه تارو تهمتن بی آمد به نزدیک شاه چنانچون سزد با درفت شد سفا خواب ازتونه پدر <تصفيق> ما داره بزنی تا گوجه کندیم نقصه <تصفيق> ازا سیستفش کند نفرسی برم؟ برم تو خواهد میخونی؟ من خاضر نکرم خاضر نکرم، خواهد دیگه تو بکنم بزن روی کسی وزن نیکخواه بی آمد بر شاه تورانسپا همه داستان سیاوش. بگفت همه داستان سیاوش بگفت که او رو شاهان کسی نیست جب ز خوبی و خوبی کردار اوی زهوش و دل و شم گفتار او دلیل و صفانگوی و گرد و تو گفتی خرد دارد اندر کنار ام. بخندید با او چنین گفت شا که چاره هر جنگ اینید خواه چاره بهتر جنگ گشت از آن خواب بعد بنهید از آن باید از آن میخونه از آن که بخونی شерв دلم گشت از آن خواب بعد گشت از آن خواب بعد با نهید از آن با از آن از آن که زبالا بدیدم نشان نشید پرای از درد گشتم سر روی چاره باز بدان تا نبینم نشید تا نبینم. بدان تا, تا نبینم نشید, نشید و سراج به گنج و درم چاره آراستم کنور شد برانسان که من خواستم بازان روی چون رستم شیرمرد بی آمد برای شاه ایران چو نه دنبال داری بازان روی چون رستان شیرمرد بی آمد برای شاه ایران چو گرد به پیشندر آمد چسیده پیش به هم آمد به کنر به فرزند رو از گردش روزگار گردان و از رزم و کار سپاه بزان تا چرا بازگشت دوزرا نخست از سیاوش زبان برگشاد ستودش فراوان و نامه بداد چو نامه بر خواند خاند دبیر رخ شهریار جهان شد چغیر به چنین گفت گیرم که اوی جوان است و بد نارسیده به رو بد نارسیده به رو یعنی بد و زشتی جهان ندیده بد بهش نرسید نشده اینجا چطو نیست اندر جهان به سر به جنگ از تو جویند شیران هنر ندیدی بری های ها که گم شد ما خورد آرام و خواب مرا رفت بایست کردم درنگ مرا رفت بایست کردم جنگ خودم بعد میرفتم ولی بایستدم مرا رفت بایست کردم درنگ مرا بود با او سری پردو جنگ نرفتم که گفتند از ای درم رو در بمان تا بسیر چد تا بسیر چد جهاندار نو, نو. چوبا دفره ایزدی خواست بود مکافات بد را بدی خواست بود شما را بدان مردری, مردری مردری خواسته شما را بدان مردری خواسته بر این گونه بر شد دلاراسته بس. اینجایی که از گره های خیلی حساس رو داسته رو داره کنه سپا روندن اون رو پستن تخواهی خودش تمام همه تخواهی گرفت بعدم قرار سورت روشت درستم گفته که ما چون اتنیان نداریم به تورانی ها ممکنی که بازی بکنن گفتن که گروگان به که ما چیز که ما حاطر موجه باشه که دیگه شما دروح نکنیم نفر از خیش آوندان بود که گرفتن اون که بعد رستم گفته که که که کابوس آدم تندیه آدم مزخفیه من خودم برم آبرو داشته بود احسیت داشته بود که حالیش کنم میاد میره با تمام این احوال کابوس باز دیوانگیش گل گول کنیم تمام می‌دادم قبلا با خودش به قول شما ها چک کرده بودن یعنی با در درمیون گذاشته بودن که آقا اینجور شده اینجور شده خود اونم گفته بود که اگه رفتن خاک خودشون تو اون تو نرودگی همین ها شد رستم میاد این داستان اون. میگه اول گفتی از رفتش برادرش عبرو سیاب. داستان سیابشو گفت که اینجور کرده و اینجور کرده گروگان خواسته و مدادیمو بعدم گفتی که خیلی آدم جالبیه، سیاوش خیلی آدم خوبیه خیلی آدم قابلیه، آدم نیست که آدم دوستش داره بزن روی که از نیکاه بیا مند برای شاه توان صفاه همه داستان سیاوش سیاهوش بگفت که اون از شاهان کسی نیست تو بیگه نظیرش کسی نیست از چیز خوبی یه، خوبی یه دی دیدار و کردار اون بیگه خیلی زیبا، خوب دیداره یعنی زیبا هم کردارش خوبه این یعنی کاراش خوب خود هم خود زهوش و دل و دل وعنی شجاعت گاهی هم دل وعنی ولی اینجا که داستان تحلقانی است، این دل وعنی شجاعت زهوش و دل و شرم و یه بچه شرمدین با حی برونیست زهوش دل و شرم و گفتار اون همین هم دلیرو، و سخنگوی و گرد و ثوار. تو گفتی خرد داردن در کنار میگه مثل این است که همیشه پلوش مشاورش که همه حرفا خرد است که خرد پلوش میشه نه همه اون درنش میزه شاه هم افراسی هم خوشش میادی که بخندید و او گفت چنین گفت شاه که چاره به از جنگ میگه آره بهتره که ما هم نکنیم برای که من اون خواب بد رو که دیدم بهتره یه جوری جلوش بگیریم علاج کنیم دلم گشت ازم خواب بعد با هیب بالا ندیدم نشان نشی میگه اون بالا که بودم انقدر اون پایین گفت بود و یعنی من در شرف این دن اونجا که نمیدیدنش پایین بود فر از درد گشتم سوی چاره باز وقتی دیدم که اونجا انقدر قطرناک ایناست به فکر چاره افتادم بدان تا نبینم نشیب از فراز برای اینکه از اون بالا به پایین نیفتن داشته پرهیز میکرده از جنگ که اون خوابی که دیده عملی نشدیه به فکر چاره افتادم برای اینکه از اون بالا نشیب رو نبینم این دیدن مثل مثلا میگن داغ دید یعنی فلا اینکه از ما دیدن یعنی به سر کسی اومده میگه من را اومدم تون چاره برای اینکه از اون بالا به پایین نیفتن، پایین رو نبینن، یعنی مقتلانش هم به سقوط به گنج و درم چاره آراستم پنون شد برایم سام که من خواستم میگه من با پول و اینا گفتم که عباس علم داری گفت ولیعت رفتنی بود آم با اسکناس بودشی گرفتیم و اینجا همونجه با ازگناس بخشه گرفتن به گنج و درم چاره آراستن کنون شد برام سان که من خواستم همونجه گرم میخواست شد این ماله افراسی ها بود و دستگاه توران. حالا بعد هم گرده سر ایرانی هاش اوزان روی از اون طرف تون دستم شیر مرد بیامد برای شاه های ایران چون گرد چون گردان خیلی به سرعت آمده دیگه به پیش اندر آمد به کشف کرده دست. به کشف کرده دست یعنی دست بسیمی. کشف یعنی هم زیر بقه. بسیم. به پیش اندر آمد به کشف کرده دست. دست بسیمی من جلو شم. شام جلو پشت بلند شم. آمد... یعنی آمد بالا. برا آمد سفه بد سجای نشد. خیلی کم قیلو کسی بلند می شدید یعنی که رسلم خیلی آدم محترمی بود بپرسیدو پرسیدن در شاهنامه خیلی میاد با می احوال پرسید و باز این اول پرسیدن فرمول محسوس داشته یعنی یکی از چیزایی که از مسافر می پرسیدن این از که انشالله در راه رنج و سختی خیلی نکشیدین خیلی سفرستان، الان هم میگن که مسافرتون خوب بود حتی با هوافران یا خوب بود الان هم میگن، همینه پیز. این همون فرمونیش که قبلن هم بپرسید و بگرفتش هم در کنار یعنی همون در آغوش گرفتن همون پشتش زفرزند و از گردش روزگار وقتی بغلش کرد پرسید که خب پسرم چطوره؟ اوضاع چطوره؟ زگردان و از رزم و کار سپاه پرسید اوزان تا چرا بازگشت دو چرا شما برگشتیم؟ بعد روستم میگه روستم اول از زیاغش هرسه نخست از زیاغش زبان برگشه ستودش فراوان یعنی خیلی سیاغوش رو ستایش کرد گفت همچینه همچینه جوان خودیه جوان خردمندیه همین حرف رو و بعد نامه داد که این نامه رو هم ترکیم کرده نامه رو ملاحظه میکنید که هیچ وقت شاه خودش نامه نمیخونده و این وقت هم نمینوشته میداده کس دیگه بخونده بله بله نامه داشتن کاملا عطا تو دوره قاجار که ما خیال می‌کنید اونسا اینا خیلی خرجوران تمام های قاجاری دو تا زبون 2 تا زبون 3 تا زبون 2 تا زبون تربیت شدن یعنی گفتم که یکی از های قاجار نبشی. آدم سگ باشه شاهزاده نموشه. بس زندگی سختی داشتن. برنامه های خیلی فشرده‌ای اون فصل داشتن. شاهان باید تربیت می‌شدن برای اداره مملکت که نمی‌شونه که چهره مثلا یک یه وقت بیاد که ممکن ممکنه سواد ننشته بشیه تغرار سلروی بانیانگزار سلسلسل سلروی سواد نداشت و نوشتم سواد نداشت یعنی علفه بلد نمیده ها خود رزاشا هم سواد خود رزاشا و از سواد یاد گرفته بود خطش هم سیده شمس ولی بعد سواد مثلا خواهمو و بی باپ می نوشت خطش خیلی بچگانست و چیز نداشت کم سواد ولی سواد داشت چیزها رو روزی که میواند معلی سه افتاح کنه ممکنه بشتونن میخونم دیگر تو نه؟ سواده ولی سوادو در بزرگی آشی رکنه سواد ولی این سرسلسله است بعد یه از نفر دوفان اینجور نیست ولی اینکه اونو تربیت میخونم ولی اینکه وزیفه شایر به بگیره دیگه بنابراین نمیشون هرشت باشه چون آمه برو خوان فرخ دبیر رخ شهری آراجهان چون تو غیر هم. هم. بله. اون چیزایی که استفاده نمی کردن از نفت خام که از چاه می بیرون که مثلا چاه نمی کردن بعدی خود نفت می بیرون یه جایی یه نزدی که ساعت زنی می زده بیرون اینو می گرفتن استفاده میکردن حتی می سوزوندن. اما نمیتونن تونستن اینو کنن مواد مختلف ازش بگیرن بنزین بگیرن و بعد نفت بگیرن و بعد گادویل بگیرن چیزاش تایزیه نمی اینا می مونده اون نفت خام میمونده خودش چه قسمتایی که خیلی نازک بود و خیلی رقیق بوده خودش بخار شده و بعد ویر می مونده ویرش داشت کامل خیلی همین فقط همونه بس تو نامه برو خان فرخ دبی روح شهریار جام شد چه ویر بعد ببین چی میگه برستم میگه خب حالا میگیم که سیاوش جوونه بعدونی چه دنیا رو ندیده تو چه شدی این حرف اینا رو به دو گفت گیرم گیرم یعنی فرض میکنیم به دو گفت به راستم چنین گفت گیرم که او جوان است و بدنا رسیده به روی فرض میکنیم که او جوانه و تجربه نداره بعد اونی که روزگار چطور نیستن در ولی توی که اونجونی سی تو آدم بی نظیری هستی در دنیا نیستن در جهان سر به سر به جنگ از تو جویند شیران هنر بعد میگه آدمی مثل تو تو بدی های افراسی ها رو ندیده بودی؟ ندیدی بدی های افراسی ها که گم شد زمان خورد و آرام و خواب یه قسمت از حرف کاغوز درسته که افراسی ها همیشه واقعی در ده و به هیچ سره ها که هم مستقیم نبوده نمیکرد اما یک اصلا که کاغوز نمیدونه اینه که افراسی ها به دلیل اون خواب وحشتناکی که دیده ترسیده و خودش موافقت کرده که دیگه حالا صور باشه کاغوز باور نمیدونه باور نمیدونه با اون وقت اینم یه گرفتاریه مثلا پسر من فرض کنید میدونه که من در مرتبه از اون دقیقترم مثلا یا چیزا رو خوبتر ولی من میگم این رو بعد میگه خودچم نگاه کنید درست میگ بشار این جویه. میگه در روستا می‌توه خیرات تو تجربه داری بعد بازم قبول ندرو آها اگر این این که تو میگی که در جهان مثل اونی خوب سالاتی داریم کار بکن تو چی مذاکره میگی اینجوری شد آیا نه؟ مگه میگه من خودم بعد میرفتم راستم حالا می‌گه که خیلی ها ارکدیه دست رفتن مازندران گرفتن پدرش داره بودن کورش کردن روستا نبرد دیو سفید کشته اینو درآورده بوده کوریشو مالچی کرده بردش دی دفعه دو هم رفته هاماوران اونجا آفته سودابر گرفته بود بعد رفته تو تله پادشاه هاماوران گرفته واسه عبسش او. بود باز رسنان بعد از هفته رفته حالا خیلی به خود کم اعتقاد داره میگه من باید میرفتم نزوشتین دیگه ره نزوشتین دیگه نه ندیدی بدی های افراسیات که گم شد زمان خورد و آرام خواست مرا رفت بایست میگه باید خودم میرفتم کردم د مراد بود و او سریع پرزه جنگ که من خواستم باش جنگ کنم نرفتم که گفتم از زیدر من رو من نرفتم برای اینکه گفتم نه رو از اینجا بیدر ای یعنی اینجا بیدن بمان تا بسیچت جهاندار نو تو سبر کن تا جهاندار نو جهاندار نو کیه؟ بسیچیدن یعنی آماده شدن بسیچ علمه یعنی آماده شدن. اصیجات یعنی آماده بشه چون بعد ایزدی خاص بود، بادفره اصفهان جزای بعد، بعد و بعد و بعد یعنی جزای بعد، یعنی پاداش این یعنی جزای خوب پاداش و بادفره رو روی هم. زده هم میگه چون بادفت میگه که من میخواستم برم باش جنگ کنم وقت مجازات حقم رسیده بود که اینا در مقابل بدیش بدی کنن ولی گولتون ز با اون سناری که بهتون داد گولتون زد تو بادفت افره ایزدی خواست بود مکافات را بدی خواست بود چهار رافتان مردی خواسته بار این گونه در او دلارت مردری مخفف مردریه مردریک یعنی ارث چیزی که از مرده باقی میمونه مردریک یعنی اولش هم مرده است یعنی چیزی که از مرده باقی میمونه یعنی ارثو میگه خواستم که گفتم مال و سروته اینجا این به اون خواسته مردری محسوسش تغییر کردنه اون یعنی با, با مبلغ کمی با مقدار پول کمی شماها شما ها با یه خواسته کمی با اون مردری خواسته دلتون آراسته شد و فلسه رضاحت بدی که اینقدر پول بگیریم چیز کنیم نشد باز با بادفره, بادفره. هم نه اون همونه که در پاداش هم پاییتی یعنی زد نه دیگه جز دو باش پادفره با هم یعنی مجازات ولی اگه ما خواهی تعیزه کنیم پاداش یعنی مجازات خوب پاداش هم یعنی مجازات بعد. الاتون که کشم چیز داری من الان نمیدونم در پحلوی هستی بیر و نگاه کن حالا. الماره آی من قسمت اولش با هم پاییتی یه پاسخ و پاداش با... شما را بهند مردری خواسته بر این گونه برد دل صد کجا قسمت از هر کسی بی‌گناه میگه این پولی که از مردم به زور گرفته بود از هر کسی گرفته بود این کجا من چه اسم عبد پولی که از هر کسی گرفته بود بدون گناه به دینتان بپیچیدتان راه میگه با اون مختصر پول سر شما رو را از راه برگردون یعنی خلاصه در تکنام خرتون کرد اون پول گولتون زد بخون به که بیچاری نژاد که نام پدرشان ندارند ندارند یاد ندارن. یاد کنون از گروگان که اندیش شدون همان پیش چشمش همان آبجوی شما اگر خرد را نبستید کار نه من سی... سیرم از جنگ و از کار نه من سیرم... سیرم از جنگ و از کار <تصفيق> نه خاموش شما اگر خرد را نبستید کار نه من سیرم از جنگ و از کار زار. به نذری سیاوش فرستادم که یکی مرد مرد با دانش, مرده، یکی مرده. یکی مرده با دانش و پرفسون به فرمانش فرمایمش بفرمایمش خاتشی کن بلند به بند گران پای ترکان ببند براتش به بنه براتش بنه خواسته هرچه هست براتش بنه خواسته هرچه هست نگا تا نیاری به یک چیز دست آسان بستگان بستگان آسان بستگان را کسان بستگان را سوی من فرست که من این باده خونی فرع پس که دوره فردوسی پسان بستگان راست توی من فرست که من سر بخواهم تنشان گسد تو با لشگر خیش سر پرز جنگ جن برو تا به درگاه او بیدرنگ همه دست بخشای تا یک سره چو گرگ اندر پیش بره چو تو ساز گیری سباحت کند کند کنه قارتو سوختن بیاید به جنگ تو افراسیات چه گردت برای اون آفرش آرام و خواهد بسیار، راقید میگه که شما اون سهنارپول که بهتون داردن گول خوردین سطح طور که بیچاره بعد حالا روستن دونه دونه رو لیست داده گفته این اشخاص رو بفرست پسر عمود مثلا برادر اتنه کسان نزدیک شو گفته بفرست فردانه میگه که روستن یک کسانی رو نوشت داد گفت اینا رو اگه بفرستیم ما قبول داریم حالا کابوس میگه به سطر که بیچاره بدنجاد که نام پدرشان ندارند یاد شما رو گر زد سطر عمله رو فرستده سطر آدم بدبخت مفروکه بیچاره رو فرستده که اسم باباشون نمیدونن چیه این که نبوده که گفت میگه به صد ترک بیچاره بعد گفتم که تورانیا ترک نبودن ولی فردوسی فکر می‌کنه که اینا ها تورانیا ترک تورانیا تورها قبیله آریایی بودن که تمدنشون فاین‌تر از ایرانیه. به هر به صد ترک بیچاره بدنژاد که نام پدرشون ندارن یاد کنون از گروگان چه اندیشد او میگه صد تا آدم گمنام بدبختی که اسم باهاشون ولادیسلاو فرید شما اصلا تلوجی به این کار نداره. که از این گروگان ها اصلا فکر میکنه همان پیش چشمش همان آب میگه این گروگان پیش اون مثل آب جوریمون یعنی بی اردش هم حالا میگه اگه شما بی خردی کردین بی شوقی کردین من که نمی کنم شما اگر خرد را نبستید کار نه سیدم از جنگ و از کار دار. اگه شما به قانون خرد رفتار نکردین من از جنگ سیر نشتنم و حالا دستور میدم به نزد سیاواش فرستم کنون بعد برستم میگه تو تنبلی کردی نخواستی بری جنگ هاش نیمدی اینجا <تصفيق> به نزد سیاواش فرستم کنون یکی مرد با دانش و پرفسون یه فرستاده معقول با دانش میفرسم بفرمایمش یعنی دستور میدم به سیاوش کاتشی کن پلند آتش مفصلی روشن به بند گران پای ترخان ببند. گروگانایم هم چلتن همه رو بند کن. بر آتش بنه خواسته هر جا. هر چی مال و اموال زدنا اینا همه رو آتش بده. یعنی که نظرش هیچ بیاد. بر آتش بنه خواسته هر چه هست است. نگر تا نیاری به یک چیز دست هیچی نیست. تمامش آتش بزن. پاهسان بستگان را سوی من فرست که من سر بخواهم به تنشان گسته میگه اون بستگان افراسی هم من همش میگوش بعدا تو برو توی توران بزن و بکش وقتی که تو رفتی و قارت کردی, کردی افراسی ها ناراض میشه میاد بجن بری زرمت پیش کن پس آن بستگان را من فرست که من سر بخواهم به تنشان گسته تو بالش کرخیش سرپرز جنگ برو تا به درگاه همون میدهرنه فوری برو تا درگاه یعنی پا همه دست بکش دست بکش یعنی شبو کن به جنگ اقدام کن همه دست بکش ها تا یک سره چون گرگندر آین پیشش بره میگه توری بکن که این سپاه تو می سر مردم مثل گور چه سر پر چطور چطو سازگیری بدا موختن سپاهت کند قارت و سوختن بیاید به جنگ تو افراسی ها میگه وقتی تو شروع کنی به جنگ و سپاهت شروع کنی به قارت و آتیست دادن همه جواب ببینید این رفتارای قوم قالب میشه با قوم مغلوب این رفتارای همه جه ها فرق هم چه ایرانیا بیان برن توران چه تورانیا ها ایران همینه اون روزگار رفتار این چیز میگه که وقتی که گیب رو میفسه به مازندرون تابوت هم وقتی میره به اونجا گرفتار میشه میگه که وقتی میری به مازندرون میخوام یه جوری بری که دیگه هیچ سری به تن باقی <تصفيق> تو تو سازگیری بدا موختن سپاحت کند قارت و سوختن بیاید به جنگ تو حفاظیاب تو گردت برای اون ناخوش آرام خواب وقتی آرام خواب بر اون ناخوش بشه نگران و ناراحت بشه میاد بشن تهمتن اینجا خیلی توهین بزرگی روستان کرده و یکی از عیبای این کار است که رستن هم بهش بر میخوره و نمیده در نظر سیاهش از یه مشاوره با تجربه خیلی خیرتمنده درجه یکی محروم میشه اگه رستن رفته بود نمیذاش سیاهش کرده به هر قیمتی میبوره زابوره یک کاری بیچن ولی نمیذاش بره تو ولی رستم هم کنه نمیره مرسی ترکیب تو رو بذاره داردان به دو گفت که شهریار دلت را بدین کار غمگین مدار سخن بشنو از من تو ای شاهنخوست از آن پس جهان زیر فرمان تو خوب او نگران نباشین اول حرف من بشنویم بعدم هر کار می بکنین تو گفتی تو گفتی که بر جنگ افراسیاب مرانتیز لشکر به سوی آب میگم من خودت نگفتی که وقتی که رسیدی اونجا اون سوی آب یعنی اون طرف سه اون جهون نرو خودت گفتی تو گفتی که بر جنگ افراسی آف مران از رونده مران تیز لشکر بدان سوی آب. بمانید تا او بیاید بچن گفت شما تا او بیاید بچن که او خود شتاب آورد دیده رنگ گفتی که اون خودش خواهد اومد شتاب خواهد کرد ببودیم تا جنگ جوید درست میگه ما صحب کردیم ببودیم یعنی موندیم ببود. شما گفتی که افراسیاب میاد خودش میاد به جنگ شما میبر باشید افراسیاب میاد شما اون بر نرید اون میاد بجنگید میگه ما هم چه وایسادیم ببودیم تا جنگ جوید درست در آشتی او مشار از نخواست میگه ما موندیم که اون جنگ کنه ولی او پیش نماز سورد کسی کاشتی جوید و سور و بعض ننی کوه وقت پیش کسی که پیشنهاد آشتی و سو رو بز میکنه درست نیست که ما با حالت جنگ جلوش کردیم و دیگر که پیمان شکن پیشگاه نباشد پسندیده نیکا دوم این که شکستن پیمان پسندیده نیست ما قرار بشیم بعد هم یا حالا بسرید ولی بعد میگه که به کاغوز خیال راحت کنه میگه که یکیش این رو نکن که سیاهش پیمانشو بشکنه هرگز این کار رو نکنه بعد همین گفتگونشون حالا میبینید که چیز میشه بالا میگیره به میشه که رستن نمیره رستم بر نمیگرده و یکی از مسائل مهم که باعث کشتن سیاهش میشه همین پرفتن رستن ها اون جرفتن مونید که گذشت با همستیم نمیرسی این رو بخونه. ما هم یه چیز بپرستم از شما چیزی که جوابشم از پیش خودم نیدونم هیچ کدوم از شما ها رفتیم بیشین این جزوارو بخونید آقا بخوندی؟ باید که باید که باید تفنم جلوهد آقا ندارم ایلا خوبه باز. خیلی امیدوار شدن دیگه کسی دیگه؟ بخون خودشون ها نه خود این بخونی آره تمام آره. چیزه باید کم دارم که ترزیم کردیم میشه من باتش کنم از چه عملیاتی کردی آقا واقعا خیلی خواهرم برد هم و بطه هم مریم و مهری این آقا ایرام بوده بله کی اسمش که جا فیک <تصفيق> دیویس آه پس اینکه باله باله فیک دیویس یه چیزی هم تازه میسکی درسته این همینه نه نه بعد از چیزی یه همینه این تازهت <تصفيق> نیست یه نهایتی راجع بهش خوندن یه نهایتی راجع بهش خوندن که خوب نگرفته بودم نگرفته که خوبه چرا سه تا باش تو ایران زندگی؟ آره، آره، با چاشمه هستن، نمیگوشه دیگه. ما که اومو ایران زندگی کردیم با با ثواد داشتن تقدیر ولی اینکه شما اینکه ایران زندگی که خودتونی نیستن. این دو تا. یعنی اینا بعداً شما وسط بخونید. هر بوس به هر حال پیداش قبول دیگه، فلسفیات میونه. من میگم اینکه دیگه خود همین کلمه